بسیار از مطالبی که تا به حال به شما گفتم با هم و با آنچه حالا میگویم و بعد خواهم گفت پر از تناقض است گاهی آنچه یک بار میگویم با آنچه بعدا اضافه میکنم ناجور است و شما هر نتیجه که میخواهید بگیرید اما بالاخره من همین هستم که شما دارید میبینید من دارم خودم را بدون هیچ هیچگونه شیل ای به شما نشان میدهم در گفته های من تناقض نیست در وجود من در هستی من تاقظ هست. میدانید زندگی مرا به چه باید تشبیه کرد؟ به چشمه آب زلالی که در گوشی از کوهستان از زمین می جوشد. آب صاف خنکی است. این آب هستی بخش رو هافز است. این آب از کوهستان که سرازیر می شود و خروشان است. از تخت سنگ ها میجهد، بوده ها را از جام می کند، شنریزه ها را با خود می غلطاند، وقتی به جلگی رسید آرام و است. چمن ها را می آراید و گل ها را تراوت می بخشد و برکت همراه دارد، همین آب وقتی به مرداب رسید و یا در حوض های متعفن باقی ماند گنداب می شود، اگر به شورزه رفت به اونق زمین نشست می کند و روی زمین دیگری از آن, با... اثری از آن باقی نیست، اما باز به قرر زمین که نشست صاف و زلان می شود. این است زندگی من. همان آب صاف و روح که به این شکلهای ناجور در می آید. دیگر از چه تناقضی داریم صحبت می کنیم. برخلاف تمام آنچه که تصور می کدم که صورت ظاهر او در من نمی تواند تأثیر داشته باشد پیشانی بلند و چشمهای درشت و نافذ او لباس آراسته و حرکات و موضوع و وقارش. طرز بیان شمرده و فشار دست سنگینش اینها همه یک مرا رو مشتعل کرد و از وجود و شخصیت ساختگی من جز خاک سری بیش نماند. من چنان خود را ناچیز و ناتوان احساس کردم که تصورش برای من غیر مقدور بود. این یک احساس تازه بود و عبداً با آنچه کتاب حال به سرم آمده بود شباهت نداشت. من راک می کردم که از یک کلمه حرف او سرخ می و دیگر آن جسارت و پرویی پر در من وجود نداشت خجالت می عیناً من مانند دورانی که پانزده ساله بودم از تماس با او تشنجی من دست می داد. من برای خدا داد احترام قائل بودم از او حرف شنوی داشتم او مرا مرعوب کرده بود اما آنجا دیگر زن زیبایی که در وجود من نهفته بود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 با های درشتش که در تاریکی مانند های گربه سیاه می‌درخشید به من نگاه کرد و من مانند دختر بیچاری که در دست مرد مقتدری اسیر شده برگشتم و به اون نگاهی که پر از عجز و لابه پر از التماس و التجا بود انداختم گفت مثل اینکه شما را جای دیدم گفتم من شما را هیچ ندیدم گفت صدایتان به گوشم آشنا می آید. گفتم خیال می کنید. چرا دروغ گفتم؟ برای اینکه میخواستم پیوندی که زندگی مرا در گذشته به حیات و هستی او بسته بود، قطع شود. نمیخواستم بفهمد که من همان دختر سرسری دمدمی پر کارگاه نقاشی در خیابان لالزار هستم. میخواستم که برای شخصیت من ارزش قائل شود. فیلم تازه که به تهران آمده بود جمعیت زیادی آن شب برای تماشا حجوم آورده بودند. در راهروهای حیات سیما نیمکت گذاشته بودند و تماشا را رو روی آنجا می دادند روی یک نیمکت جای یک نفر بیشتر خالی نبود. آمن خودم را جمع وجور کردم و به او هم جایی دادم. برای اینکه از روی نیمکت نیافتد دستش را به تکی پشت نیمکت گذاشته بود. من کمی به نفر پهلوی خود فشار آوردم و به استاد گفتم نزدیکتر بیایید تا بتوانید درست بشنوید اما او خودش را به من نچسپاند و من دلم میخواست که گرمای تن او را احساس کنم دلم میخواست دستش را محکم بگیرم و روی سینه فشار بدهم تا تپش دل مرا حیجان و اضطرابی را که به من دست داده بود به او بنمایانم آخ میخواستم خودم را کوچک و نحیف نشان بدهم تا دلش به حال من بسوزد داستان تابلو چشمش از همان جا شروع شد چطور ممکن بود که استاد ماکان نقاش بزرگ که با یک نظر اسرار را میخاند به من بنگرد و انقلاب روحی من را درک نکند در همان شب اول مجزوب چشم های من شد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 من از این مرد جا افتاده خجول و گوشنشین و در این حال آتشین و فولادین که در فکر همه چیز بود جز فکر اشبازی با دختر جوانی مانند من احتیاط می کردم. از همان ساعت اول احساس کردم که اگر او را مطیع خود نکنم مرا له و لورده خواهد کرد شاید هم به او ساختگی و با چشمهای عاشقانه مینگریستم اما قصدم زجر او نبود قسم فریب دادن اون نبود من میخواستم خودم را زن فهمیده و سرد و گرم روزگار چشیده معرفی کنم آخ نمیدانم که عواطف من پاک هاکی از خود بود و یا ساختگی و نمونه حوثبازی من از, حرف می پرس... از من حرف میپرسید و من جوابهای میدادم که دو پهلو باشد در صورتی که در مقابل خدا داد جرعت جز آن چرا که حقیقت محض بگویم از پاریس سوال کرد از خداداد پرسید علاقه من بود جزئیات زندگی و سلامتی او را بداند از وضع دانشجویان از صداد آنها از نفوذ خداداد در آنها می پرسید آیا من با این دانشجویان دیگر هم ارتباط سیاسی داشتم یا نه؟ که اینها تحصیلاتشان تمام می شود و چه وقت به ایران برمی گردند؟ آیا خداداد از فعالیت آنها رازی است؟ آن وقت به نصیت من پرداخت در این دوران وارد فعالیت اجتماعی شدن کار خطرناکی است با آتش بازی کردن است من تصور کنم که اینجا هم پاریس است و دست دولت به مخالفین نمیرسد آیا شنیدم که دولت ایران روابط خدا با دولت فرانسه قد کرد و قرار از تمام دانشجویان ایرانی را به سوئیس و بلژیک بفرستند مبادا خیال کنم که چون دختر هستم مسئولیت خواهم داشت همکنون چند نفر زن را از رشت و تبریز گرفتند و دو نفر از آنها قریب دو سال است که در زندان به سر برند. نظمیه به هیچ کس رحم نمی کند. اگر بخواهم فرد مفید جامعه باشم، باید بیش از حدی که ضروری به نظر می احتیاط کنم. صحبت سیاسی با کسانی که شهستگی آن را ندارند جز زیان چیزی دربار ندارد. گاهی تمجید از دستگاه دولت و دیکتاتور گناه نیست. یقینا من که از فرنگ برگشتم تحت نظر خواهم بود و لازم است تا مدتی مراودهٔ ما قطع باشد آیا نامی همراه دارم یا نه میپرسید و جواب سریح و روشن میخواست گاهی پاسخهای من او را قانع نمیکرد باز دقیقتر می‌پرسید و یا یعنی آنکه سالش را تجزیه کرد و توجه مرا به نکاتی که مورد نظر بود جلب می کرد.